رو ناصرم و ما این و سلام الله علی سیدنا محمد با آله تاریم و ماه باشان الله علی سلامت با آله محمد در جلسه گذشته ما یک بحثی رو خدمت شما شروع کردیم که عبارت بود از نقش حدیث در مسیر تفسیر قرآن که یه مقداری به کار کرده روایات تفسیری میپردارد و در اون بحث سلام داری کنم بفرماید در اون بحث برای شما گفتیم که اگر ما روایات تفسیری رو که در کتاب‌های شیعی و سمنی وارد شده مخصوصا در تفاسیر اثری یعنی تفاسیر روایی به این روایات توجه بکنیم میتونیم متوجه بشیم که این روایات کارهای زیادی رو در مسیر تفسیر قرآن برای ما انجام میده مثلا گاهی بعض از روایات درش لغاتی معلی میشه گاهی مجملاتی که مخصوصاً بیشتر در آیات و لحکام تبین میشن گاه ممکنه یک حکم عام قرآنی به وسیله حدیث تخصیص بخوره یا یک حکم مطلق قرآنی به وسیله حدیث مقید بشه یا مثلا بعض از آیات متشابه ما با تعبیر صحیحش از طریق روایات آشنا میشیم ذهن این که در سه حوزه هم هست که ما به وسیله روایت تفسیری اصلا صاحب اطلاعات میشیم حتی به قول مرحوم علامه تبا تبایی که عبارت باشه از حوزه قصص الانبیا حوزه آیات و معاد و حوزه احکام فقهی سعی کردیم در این زمینه مطالبی رو هفته گذشته برای شما بگیم شما سوالی داشتید خب حالا مثالش عبدا اونجوری که من مثال زدم براتون بلی اگر به خود برای شما میگم مثلا فرض کنید ما به چه دلیل میگیم نام اون خانومی که در برابر حضرت یوسف قرار گرفت به زوره خاص خب تو خود قرآن که اسمشون نیمده منشأ این رواییه یا مثلا فرض به حالا جانبه بدونی چند وقت پیش در همین دانشکده یکی از دانشجویان این دانشکده که همین الان دانشوی دکتری مون هم هست آقای قاسمی آقای قاسمی <تصفيق> میشه آه قاسمی آقای قاسمی موضوع پایان نامه فوق نقد نکد و بررسی روایات تفسیری در رابطه با داستان حضرت یوسف بود یعنی اینجا شاید ایشون مثلا دیویستا حدیث رو کرد همه تفسیر سوره یوسف بود بعد حالا جالبه توی اون تا روایتی که از راجب سوره یوسف بود به نوعی تفسیر روایی سوره یوسف بود پونزده تا روایتش راجب این موضوع بود که آیا حضرت یوسف با سوریخا ازدواج کرد یا نکرد تو اون فیلمه که که آقای صدقشو ساخته بود که بالاخره حضرت یوسف ازدواج میکنه به زلیخواهی که جمونش میکنه که میگفتن ایشون این پیرزن رو جمون و خوشکل کرد بعدا هم باش ازدواج کرد تو ما اتفاقا یک مقاله علمی پژوهشی نوشتیم که این اخبار از جمله اخبار ضعیفه خیلی نه حالا نمیشه گفت ضرورتا اسرائیلیاته ولی خب مثلا اخباریه که بعضیاش بعضیاش البته سندهاش میرسه به ناقلانی که کشیلهی در یهودیت یا مسیحیت دارن هم من مسلمانان نقل کردن ولی معمولا سندهاش سندهای سنته ضعیفیه مثلا شاید تو 14 15 حدیث یه دونش بود که یه مقداری سند قابل دفاعی داشت ما هم نتیجه مقاله این شد که این خیلی با قوت تایید نمیشه فقط در حد یک احتمال ضعیفی باقی میه. حالا من امروز در جلسه امروز <تصفيق> در جلسه امروز قصد دارم که دو تا مطلب براتون بگم. اگر بتونم به اختصار و البته یه اقدارم جبران اختصار یه منابع رو معرفی کنم که خودتون بخونید. یعنی اگر قول بدید که یه منابعی ام ما بدیم که خودتون بخونید، ما این دو تا مطلب رو به اختصار میگیم یکی رو سعی میکنیم قبل از از آن بگیم یکی رو سعی میکنیم بعد از از آن بگیم و منابع رو هم معرفی میکنم براتون اگر خودتونم این منابع رو بخونید که آوردم و این کلاس هم آوردم بهتون میگم بعد انشالله ما از جلسه بعد بریم وارد مثلا رابطه حدیث و کلام بشیم یا حدیث و مثلا فلسفه بشیم چون ما رابطه حدیث رو در علوم دیگه هم می ولی رابطه حدیث تو تفسیر مفصل شد چون واقعا حدیث در تفسیر خیلی جایگاه مهم میداره اون دو مطلبی که انتخاب کردم که برای شما بگم یکی اینکه که من یک مقاله علمی پژوهشی سالها قبل نوشتم یعنی در سال 1384 حدود 11 سال قبل الان هم آبان، آبان هشتاد و تو آبان ما هم مراسم سالگرد علامه تبا, تبا این مجله که الان شما میبینید دست ویژه ویژنامه ایه برای علامه تبا تباییه کلن. کلن، همه مقالاتش در ارتباط با علامه تبا, تبا مخصوصاً این مقاله ای که بنده نمیشتم حدیث حدیث جایگاه و کارکرد آن در تفسیر علمیزان به نوع این نقش حدیث در تفسیر علمیزان حدیث مثلا چه اهمیت داره؟ چه جایگاهی داره؟ چه عملی؟ چه کارکردی؟ ازش در تفسیر علمیزان نوشته شده یا تحقیق شده؟ این مقاله مقاله خودبنده است خب این عرض کلام خدمتون و اولیه که نیت کردم که در این کلاس برام شده به اجیمال براتون دیم حالا شما این مجله را همگیتش بکنید مجله پجوردش دیدی 11 یازده آوال پشتادشان اگر تو از قدیق این طوره سایت مجلات علمی پجوردشی یه سایتیه به نام سایت نور ماکس سایت مجلات علمی پجنشی. اگر درستید به این مقاله اصلا دسترسی پیدا بخونید خونده 15, 15 16 صفحه بیشتر نیست یه پرینتی برای خودتون بگیرید دانلود کنید اگر دسترسی پیدا نکردید نتوانستید بعد من این شماره رو در اختیار یه نفر قرار میدم میگم که اینو فکر کنید یه قسمتی از درس یه قسمتی از درستون در 15 صفحه ما یه مطلب تحقیق شده یه مرتب منظمی در اختیار شما قرار میکنیم این یه مطلبی که نیت کردن برای شما بگرد مطلب دوتون آسیب شناسی روایات تفسیریه که این مطلب هم مفصلش در این کتابه تفسیر و مفسران آیت الله معرفت البته اگه شما ممکنه در فقول ساسی هستی احیانا درس به نام مکاتب تفسیری روش های تفسیری براتون میذارم به به طور مفصل با روایات تفسیری و آسیب های تفسیری که همیالان یکیتون گفتید مثلا از اسرائیلیات خب یعنی چی یعنی شما در نام می چی دارید تو گوشتونه یه چیو میدونید مثلا یکی از آسیب های روایت تفسیری مثلا دخول منفوز اسرائیلیاته ولی در خینه ها ما عناوین آسیب های تفسیری رو مینیسیم برای که چهار قن مطلبه اینم مفصلش توی این کتابه شما به صورت مفصل و موجز این دو رو میگیم شما هم می اول دیدید که خودتون به این منابعی که الان در اختیارتون قرار می‌گیر مراجعه بفرمایید می و مطابق کنیم. چون حرا ما وقتی که تاکیل جایگاه حدیث در تفسیر با شما حرف می زنیم این مشروطه به یک فرض دیگه و اون فرض که ما بتونیم به روایت اعتماد بکنیم به عنوان در اینقدر روایت تفسیری اما اگر روش خود روایت مجبور باشه یا خود روایت زعیف غیر قابل ایتماد باشه خب بدتر ما را از حقیقت قرآن پرت میکنه اینجا اصلا ما به روایت مراجعه نکنیم بهتره تا اینکه ما به روایت مراجعه کنیم که بشه منشعه یک دینش انحرافی از آیات قرآن برای بله که به این قسمتی به رسومی که روایت تفسیری از خوزه های جلخیز متاسفانه یکی از حوزه های خیز، حوزه روایات تفسیری حداقل وقتی داریم نقش حدیث در تفسیر می یه تنبهی هم بدیم دیگه که بالاخره روایات تفسیری خیلی آسیبش شده و دیگه علما های دقت بیشتری ارز کنم به این مساعده دق... نگاه می البته یک کتاب دیگری هم هست برام آسیب شناسی جریان های تفسیری از آقای دکتر محمد اسعدی و پاره از همکارانشون چون خب این کتاب هم واقعاً کتاب ارزشمندیه چون جریان های تفسیری رو برای ما توضیح که مثلا ما جریان تفسیر قاتلی داریم جریان تفسیر رواهی داریم جریان تفسیر فلسفی داریم جریان تفسیر کلامی داریم این کتاب البته ویژه ی روایت تفسیری هم نیست ولی یه بخش درباره در تفسیری آسیب شناسی کرده منظور من اینه که دانش یا ننزیز در دوره تحصیلات یه معلم خوب معلم نیست که بیاد از به بی بسم الله تا تای تمد رو سری راست بگیر اصلا باقید چنین وقتی وجود نداره. نتاره که چنین معلمی هم بهی میشه که یک علامه باشه که از بیه بسم الله تا تای تنبت رو بلد باشه و بیه یک معلم خوب معلمیه که به در زمینه هر موضوعی منابع تخصصیش رو بهش محیط و مسلط باشه و بخشی از مقتبا رو از طریق منابع به شما معرفی بکنه و اصلا شما رو تشریخ کنه به اینکه خارج از کلاس بودید مطالعه بکنید برید مطالعه بکنید اینم منابعشه اگر دوست دارید با معلومون بشید اینم منابعشه من حالا نمیگم معلم خوبیم ولی وقتی کلاس رو قبول می کنم کلاس درم سعی می کنم واقعا منابع اصلی و فریش رو شناسایی بکنم در کلاس تمروم کذ بکنم به یک رشت مسائل اصلی تر یک رشت مسائل را هم شما را ارجاع بدم به منابعی که میخوایید بدونید برید اینم مطالعه کنید اما در ارتباط با این مقاله ای که ما نوشتیم حدیث جاویگاه و کارکرد اون در تفسیر علمیزان من <تصفيق> رو این مقاله را اگر برای شما بنویسم متوجه می که از خدمت خدمتتون این مقاله چه اهمیتی داره یه گستره مباحث بر روی هایی تا بایدید دوستان عزیز تفسیر عمیزانش فرضش اینه که تفسیر قرآن به قرآنه ما تفسیر عمیزان رو به چی میشناسیم؟ تفسیر قرآن به قرآن ولی همین ارز کنم خدمتون تفسیری که ما به نام تفسیر قرآن به قرآن میشناسیم عادت مرحوم انلامه تبا به این اشار خودتون مراجعه کرده باشیم دیده باشیم عادتیشون به اینه که تعدادی آیا رو میمیستن بعد شروع میکنن این آیات رو تفسیر کردن تو این قسمت از شبکشون اگر از آیاهای دیگه به طول برای معنا کردن این قطعه کمک بگیره کمک میگیره بحث لغبی میکنه بحث عدبی میکنه بحث بلاغی میکنه بحث حتی قرآن به میکنه خب بعد ظاهراً پرونده این بحث های علمی که بسته میشه یه تیتر می‌نسه بحثی از نظر روایات بحثی از نظر روایات یعنی در دل تفسیر‌های معمولیش که تفسیر با کمک لغت، با کمک قرآن، با کمک علوم بلاقیه پای روایات رو به وسط می‌نید ولی با تیتری به نام وحشی از نظر روایات وارد روایات شیعه و سنی هر دو میشه زمانی که میخواد روایات رو بیاره در ارتباط با اون قطعه ای که تفسیرش رو انجام داده اینجا دیگه فرق نمیکنه که روایات رو از تفسیر علیه ابراهیم به ابراهیم قومی بیاره یا روایات از تفسیر منصول سیوطی یا از اب تفسیر قرآن الرمه می کثیر یه نگاه بازی دارن به مجموعه روایات شیعه و سنی هر دو استفاده میکنه اگرم بعد بخواد نقد بکنه حدیث رو باز براش فرق نمیکنه که این حدیثی که بر دلیل علامه نمیپسنده از تفاسیر شیعه انتخاب کرده یا از تفاسیر سنی و بود دلیل عقد می کنه پس این گستره مباحث نبوتی در تفسیر المیزان که تقریباً چشم انداز روایت تفسیری در تفسیر المیزان یک چنین گستره ای داره الان اصلا دو اشی دو علامه یعنی روایتی که قوامش رو ورده بله اونوری حالا برای چی آورده صح کن با صح کنید من فقط تیتر مقاله رو تیترهای مقاله می‌نویسم. محتواشو باید شما مراجعه کنی، بخونی. تیتر که می‌نویسم در حد یه دقیقه می‌تونه یه توضیح بدن. دو. علامه و مصادیق روایات تفسیری. این دو. خب، حدیث تفسیر از نظر علامه چیه؟ ببینید، معلومن را خب، روایات پیامبر رو جزد حدیث تفسیری میدونه روایات اعمن به اعتباری که یه چیهیه و معترضه که اعمن محسومن و جالشین در رسول الله هم روایات اعمن رو هم جزد مسادیقه، روایت تفسیری میدونه اقوال صحابه و تابعان را خیر، اقوال صحابه و طابعان را جزء مسادیق روایت تفسیری نمیدونه ایشون معتقده که اقوال صحابه و تابعان نظرهای اجتهادی آنانه و ارزشی در حدیث نبدی یا مثلا حدیث امامی ندارد بله بله دقیق بکنید اقوال صحابه در سبب نزول آیات. مثلا فرص ابن عباس میگه فلان واقعی که اتفاق افتاد این آیه نازل شد اقوال صحابه در سبب نزول آلا که حکایت از مشاهده میکنه نه نظر شهادی این میتونه قابل قبول باشه هم از نظر علامه هم از نظر سایر شیعیان میگن صحابه یه وقتی سبب نزول آیه رو برای ما بیان می‌کنن اگر با سند صحیحی باشه اگر حدیثش صحیح باشه حکایتی از مشاهده می‌کنه نه نظر اجتهادی پس ما میتونیم بهش استناد کنیم ولی اونجایی که نظر اجتهادی میدن در معنای آیه ای میگه خب نظرشون نظر علمیه حدیث نیست که چشم حدیث ما نباید دشت نباید بکنیم پس علامه و مسادیل نبایت تفسیری هم رو اوشد شدن سه علامه تبا تبایی و حجیت خبر نباید مرمو علامه تبا تبایی از معدود دانشمندانیه در واقع از این جهت میتونیم بگیم یه مقداری در اقلیت قرار تو کلشیه ولی خب برحال نظار شدی دیگه از معدود دانشمندانیه که معتقده که ما باید در وجیت خبر واحد فرق بگذاریم بین خبر واحد فقیهی خبر واحد غیر فقی از معدود دانشمندانی که در بحث حجیت خبر واحد خبر واحد میان فرق میذارن بین خبر واحد فقی قائل به حجیت میشن به دلیل الزام به تعبد و عمل به روایات فقی ما خبر واحد غیر فقهی مثلا خبر واحد اخلاقی خبر واحد اعتقادی خبر واحد تاریخی میگه اینا که ربط نداره به اینکه ما بهش عمل کنیم ما ملزم بشیم به عمل ما که نباید به خبر واحد اعتقادی تعبد داشته باشیم عقل ما عقل میگه اگر عقل ما محتوای خبر رو تایید کرد میпасین اگر عقل ما محتوای خبر رو تایید نکرد اینجور میشده پس ایشون تو بحث علامه طباطبایی در خبر باهیت قائله با اره به تفصیلاً تفصیلش که خبر باید رو تقسیم میکنم یا فعلی قائل به هم یا غیر فعلی قائل به حجیتش نیستن قائل درجیت میستن معناش این نیست که خبرواد غیر فقری رو کنال بیزه را معناش که خبرواد غیر فقری رو اگر که با عقلش یا اگر با قرآن ناسازگار باشه توجیه و تعلیل نمی کنه شاید یه معنی داشته باشه ما نمیم ما نفهمیم درایده بفهمیم اینجوری حرف نمیزنم خب این هم پس وضعه ایشون راجب حجیت اتخابه ارز کنم از معدود دارشمنداری نه این رای در شیعه داره بسیارا فرض کنیم میگن مردم شیخ تلسی در مقدمه تلیان یه معدودی از علمانی شیعه رو نسبت میدن به این عقیده ولی در زمان ما ترین کسی که این حرف رو میزنه علامه تبا خب، حالا چار. کار کارکرده روایات تفسیری در علیویزان روایات تفسیری تو علیویزان چه مشکلی رو حل میکنه؟ چه کارکردی داره؟ چه نقشی داره؟ یعنی واقعا با روایات تفسیری مردم علامه تبایی چی کار میکنه؟ اینجا جاییه که اگر ما وقت داشته باشیم باید یه مطلبی دیگه مثال براتون بیاریم چون تمام اینا مثال داره تو همین مقاله که من ده سال کشمشم همه اینا رو ما با مثال آوردیم مرحوم علامه تبا تبایی علا رقم این که علا رقم این که روشتون, روشتون روشت تفسیر قرآن به قرآنه من معتنادم روی واژه چند تا کار از ازش برمیارم که حالا اینا رو یکی یکی برای شما می‌نویسم مثلا یک تعیید نتایج حاصله از تفسیر قرآن به قرآن تأییل نتایج حاصله از تفسیر قرآن بخواهد من حالا یک مطلبی عرض بکنم خدمتون این رو بعضی از شماها شاید ندونید و از من بشنبید از من بشنبید و اون اینکه مرموم علاقه تبا تبایی دو تا تفسیر تو عمرشون ببشتن یک تفسیر در تدریس یک تفسیر در گفت ایشون سالها بعد از که در نجف درسیم خلو فارغ و تحصیل میشه میاد ساکن تبریز میشه و قبل از ای که بردن بیاد دقوم در سالهایی که در تبریز ممنونن یک دوره تفسیر روایی نوشتن با کمال تعجب که خیلیاتون شاد شاید ندونید که متاسفانه تا نیمی از قرآن به بعدی مهاجرت کردن به قوم این کار تمام بوده این تفسیر روایی علامه طباطبایی به تازگی در قم تجدید چاپ شده در ده جلدم منتشر شده این اولین کار عرصت علامه طباطبایی علامه طباطبایی معتقده اگر کسی بخواد قرآنو تفسیر بکنه این نیازه به یه پیش نیاز داره پیش نیازش اینه که یه دور روایت تفسیری رو مطالعه کنه زمانی که یه دور روایت تفسیری رو مطالعه کنه به نظر ایشون تفسیرش میشه و زنده میشه چون روایت تفسیری به آدم روش میدن حتی روش قرآن به قرآن میدن ببینی ایشون مطمئنه من این روش رو از روایت خود روایت تفسیری آدمون رو کشمیخ میکنن که باید معنای قرآن را از آیات قرآن به دست. اولین کار کرده روایت تفسیری در رویزان تأیید که حاصل از تفسیر قرآن به قرآنه یه مثال ساده برخون بودن مثلا ایشون معتقد هست که در سایه تفسیر قرآن به قرآن میشه نتیجه گرفت که خدا را در روز قیامت به چشم سر نمی دواندید که هم شیعه داره هم معتظله در عهد سنت که میگن که در روز دیارمت هم نمی شود خدا را به چشم سر دید اگر بحث دیدن خداست که مثلا وجود یا اومعیز ناظره الارفه ها ناظره این رویت با چشم دله با چشم باطنه خب این عقیده شیعه است عقیده ایچون هم هست این همین حقیده رو از تفسیر قرآن به قرآن استخراج میکنه بعد میاد روایاتی از شیخ صدوق به نقل از کتاب و میاره که امام تصریح میکنه که ما در روز قیامت خدا رو با چشم دل باید ببینیم نه با چشم سر بعد میگه ببینید این روایت همان برداشت ما رو از تفسیر قرآن به قرآن تأییل. یعنی با روایاتی که در کتاب‌های شیعه و سنی میاره قفّت قلبی میشه که مسیر تفسیر قرآن به قرآنش تو این موضوع مسیر صحیحی بوده نه مسیر باطل اینه دو مطلبی که هفته پیش هم نوشته بودم ولی نسییدم توضیح بدم حالا به بهاله این توضیح میدم بالا هفته پیش رو هم کامل میشه دو، تعیین مصادیق آیات در روایات میگه که گاهی در بعض از آیات قرآن یه مفاهمی ما داریم که این مفاهیم ممکنه مستاهای مختلفی داشته باشه حالا بعض این مفاهم مفاهم بعض از این مفاهیم ممکنه مفاهیم انسانی باشه مثلا فصل مفاهیم اعتقادی از آمنوا آمنون و لم یلبسو ایمان هم به ظلم اولاهکله هم الان و هم ممتدون آقا این ظلم چیه؟ ظلم چیه؟ مصداق ظلم چیه؟ اولا هم از آیات برمیاد هم از روایات برمیاد که از ظلم و سلاسه حتی ظلم سه تا یکی ظلم به خدا یکی ظلم به مردم یکی ظلم به خودت به نفست ما درقل سه تا سه قسم ظلم داریم در نحج البلاغه هم آمده که علا و این ظلمه سلاسه فظلمون لا یعفر و ظلمون لایترک ما سنو ظلم داریم یه ظلمی که هرگز بخشیده نمیشه خب ببین در اهل زین آمنو ولم یلو بسو ایمانهو به ظلم منظور از ظلم چیه؟ کدو میشه؟ میگه روایات به ما میگوید که منظور شرکه استنادم میکنن به حدیثی که از رسول الله اومده. رسول الله میگه که از ظلم و اونا از شر و خود پیغمبر استشهاد میکنه به قرآن ندیدی در سوره لغمان یه این نشهر که و الا کدامی که از ماها هستیم که ظلم به نفس مرتکب نشیم ای قرار باشه هر کسی که ایمان میاره یه ظلم کوچه که به نفس چند کنه امیت از وجودش رخت بمنده اصلا یه دیگه آدم ها محیوس میشن یا اصل مطلق میشه یا دیگه اینجا مراده از ظلم رو روایات هم تصویح کنن که شعر در قرآن ما میتونیم به فهمیم از مسیر تفسیر قرآن به قرآن بنابراین تعییم مسادیق آیات در روایت بعض گاهی حقوقت هم بعض از مسادیق مسادیق انسانیه مسادیق انسانی مثل چی؟ مسادیق انسانی مثلا مثل قلول امر قلول ام یک مفهومه دیگه الله و اتی الرسول و قلول ام رو نمی کن. این قلول ام که یک مفهومه یعنی صاحبان فرمان صاحبان فرمان نا چیانی؟ مثلا بعضی از روایات به ما می که این از طبقه معصومین هست علاقه حالا بعد اسطلال کردن به این دلیل از طبقه معصومینن که اطاعت مطلقه خواسته شده عطی الله و عطی رسول و رسول و معمولا علامه تبا یک اصطلاحی داره که این اصطلاح هم از باب یه اصطلاح هم از ابتکارات خود علامه است یعنی برای اولین بار این اصطلاح رو علامه ابتکار کرده حالا جالبه در این ابتکارم باز از یک حدیث استفاده کرده ببینید جری و تطبیق جری و تطبیق خود این اصطلاح از ابتکارات علامه است ریشه این ابتکار برگرده به حدیث امام باغر علیه السلام حدیث امام باغر در تفسیر عیاشی. که امام باقیر میگه که هر قومی یک آیهی داره و آیات قرآن تا عبد جاریست و است و هر قومی میتونه آیش رو در قرآن پیدا بکنه و بخونه لکل قوم آیتون یتلونه بعد امام باقیر میفرماید بعث از آیات در سطر اسلام در شعن فلانی فلانی فلانی نازل شده که اگر قرار بود که این آیات که در شعن اونا نازل شده با مردن اونا این آیات هم از رده خارج شد که دیگه چیزی از قرآن باقی نمی بود ولیکن در قرآن یجری کما یجر شمس و القمر همونطور که آفتاب و ما هر روز میان دو میرن جایی هستن قرآنم عمر داره یجری مافوق زمانه مافوق مکانه مافوق اشخاصه ممکنه در شعن یک کسی نازل بشه اگر ما میگیم که عرائتن لزی یعنها عبدالعزاس الله در شعن ابو جر نازل شده میگه از باب جر تطبیقه یعنی ما این آیه رو تو زمان نزولش تطبیق بودیم به ابو ولی در دوره های بعد جاریست برای هر آدم مزاهم نمازهای های مومنی متوجه اصلاح جریع تدقیه نیچی؟ یعنی این آیه در زمان خودش مطابقت داده میشه به مورد روزونش ولی توی تاریخ جریان داره برای تمام کسانی که با همون شرایط بیتونم مورد خطاب آیه از نظر مرد یا زم قرار بنابراین ایشون یکی, یکی از خدمات روایات تعمیل مصادی و آیات با ذکر این نکته که مصادیقی که روایات به ما میدن این ممکن از باب جریو تطریق درست باشه مثلا فرض کنین در روایت تعبیری ما داریم که هوال نزیجه علدکمون النجومه لطه تدروبه ها فی ظلماته برد برد برد حالا ما روایت داریم که میگه ان نجوم و محمد در نحجل هم هست که علا این نمثل آل محمد مثل نجوم سما علا میگه من قبول دارم ولی از چه بابی جر و, و تطبیق یعنی این ممکنه یکی از مسادیق نجوم آل محمد باشه ولی این جاری در مسادق دیگر هم باشد خب پس این دکومت خدمتی که بایدار دمام میکنن با توجه به این قاعده حالا چکار ادامه بدیم؟ یا بشیم مانع نماز خب ادب میکنیم در ناروبر نماز این مطلب رو شاندار در بعد از نماز برای تو ادامه اصلا بنا بایدار اصلا مسئله توضیح مجملات قرآنی با است. توضیح قرآنی خب بعد ما علامه ضمن ای این که معتقد هستند که اساس تفسیر تفسیر قرآن به قرآنه و این روش اصلا مورد سفارش خود پیامبر و احمه هم هست در عین حال معتقد هستند به وجود مجملاتی در قرآن اونتاها ایشون مجمل رو مبهم نمی دانند یعنی محتمله که ما احتیاج داریم به روایات تفسیری برای بله که این مجمل رو تبدیل بکنه به مفصل تفصیلی یافته ولی مجمل مبهمی. مثلا میگه قرآن کریم عقیم و صلات. نماز رو اقامه کنید همه میفهمند عقیم و صلات یعنی چی بر حسب زبان عرب عقیم و فرفائل از صلات هم نماز رو اقامه کنید این مجمله ولی مبهم نیست چون ما بر اساس قبار درم منشون می‌فهمیم مرادش را می‌ساز می‌کنیم ولی در این حال برای که ما موفق بشیم به این که اقامه‌ی کنیم اونطور که مقصود شارعه این مجمل باید مفصل بشه و البته سنت رسول الله برای ما تفسیرشو می‌گه بنابراین ایشون از کنم خدمتون به مناسبتی در تفسیر آیه محکم و متشابه که آیه هفته سوره آل ابرانه بعد از اینکه تحکیب میکنن که ما متشابهات رو از طریق برگرگندن به آیات محکم میتونیم معنی و مرادش رو درک کنیم که یکی از مساعده در تفسیر قرآن به قرآن رد متشابهات به محکماته اینا رو بحث میکنن میگن نعم اون آل. تفصیل‌های قوم، تفصیلات قوم، بحث تا سنت تفصیل، تفصیل‌های قوم می‌مالد سبیه، لحوق علاط هلاکی، از مواردی که ما بهشون نمی‌رسیم، من غیر بیان به غیر از اینکه ما به بیان به هم مرد مراجعه کنیم. کما ارجعن قرآن رو ایلی فی قومی میگه اینم به دستور قرآن خود قرآن ما رو ارجاع میده به بیانه کجا؟ آنجایی که میگوید و ما آتاکم رسول فخور و و ما نهاکم انغو فنطمون و ما فی معنا هومنال بعد میگه نه تنها تفاصیل احکام و کذا و کذا و به همین تردید تفاصیل و قصص و نماعات پس ببینید این همون جایی که ما میگیم مرگوم علامه تبا تبایی سه دسته از آیات رو به انوار موجین ملات قرآنی است کسناده و میگن ما در این سه دسته از آیات نیازمند بیان پیغمبری یک احکام آیات احکام، دو، آیات قصص، سه، آیات ما حالا ما بخواهید سر بسر علامه تبا طب تبایی که خب ما چند تا آیات احکام داریم مثلا میگن کنی ست ما چند تا آیاتون قصص کردیم <تصحیح> شاید میگنی یک سمبوم برحان آیات قصص شد. چندتا چند تا آیات رو ما داریم؟ سه سه اصلا چی ماند از قرآن؟ اگر قرار باشید در این سه بغزه ما نیازمند در روایات باشیم بعد چه قسمتی از قرآن ما نیازمند نیستیم سیم؟ یه کسی گفت که عهد کردم که دیگر می نخورم من هرگز به از امشب فردا شب و شب‌های دیگر ها در اصول هر شب یک جمله داریم میگن تخصیص اکثر جایی است یه جمله‌ای داریم در این که میگن هر عامیه تخصیصی داره مثلا فرض کنیم میگیم که همه دانشمند مثلا میگیم دانشمندان قابل احترام خب اکرام العلماء بعد میگیم الا فاصله مندون یعنی راس فاصله معنیش اینه مثلا تو صف آدم ممکنه یکیش فاصل باشه احترام 99 تاش واجبه بشه دیگه اکرام العلماء بعد میگیم ان فاصله منهم غیر از حالا اگر قرار شد که تو ست تا عالم نود و پنجشتاش باشه یه با. با. من قلم لوس میشه اکره نو چی میشه؟ <تصفح> لوس میشه اگر تو ست تا عالم 95 و شد بینیان چی؟ اکثر اکثر, اکثر چیه؟ تو قاعده رو لوس میکنه قاعده رو لوس میکنه. ها یعنی چی رو میکنه یعنی از ارزش از ارزش این حرف تو خیلی یعنی حالا بحث الله میتبا همینه میگه که قرآن نیاز به تفسیر میگه قرآن نیازی به نواهی تفسیری نداره ولی خیلی از سه کوچولو کچودو <تصفح> <دو سلی مونید. تصفح> این میشه تخصیص اکثر تخصیص اکثر خود قاعده رو هم شلو میکنه خود قاعده رو هم از قاعده بودن میندازه معناش این که معنیم الله میتبا در شعار می‌گه تفسیر قرآن به قرآن ولی در عمل در بسیاری از زمینه‌ها، از روایات استفاده می‌کنم ایشون متبین یکی از کار رواید تفسیری یکی توی این سه حوضه مجملات رو برای ما تبدیل به مبین کنه یا تبدیل به مفصل کنه اینم کارکرد کرد که آن من را رو گوردم مثلا فرض کنید حالا یک مورد خیلی سادهش هفته بیش هم به یک مناسبتی اینجا بحثش شد اینجا هم مرحوم علامی تبا طب بحثش رو کرده میگه وقتی قرآن میفرماید و ساره و و فقط قطع فقتر عیدیه ما جزا هم به ما کسا همه نکالا نکالا من الله خب یهت مطلقیه از شانه رو میگن دست شروع میشه بعد میگه که در بحث رواییش روایاتی هایی رو اوشانی آره که بر اساس هایی روشن اوشانیم شود اولا حد سرقت در کمتر از یک چهارم دینار جاری نمیشود دینار پول درشت صبر اسلام بوده که میگه که اگر کسی وقت هر دینار ده تا دیر همین شده یعنی اگر کسی مثلا سه درهم هم کمتر از یک چهارم دینار میده چون 1/4 دینار مثلا میشود دو درهم همونی اگر یک کسی دو درهم و 2 دزدی اینو کمتر از یک 4 دینار حد دیرهش تعلق نمی گیره بر حدیث امام جواد در حضور معتسم که علامه این حدیثو ما هفت پیش گفتیم در آن به رویتی از رسول خدا آیه قرآن استناد شده که دست تنها چهار دست راست خواهد بود تا به قادر به تیمون یا سجده باشد سالسن در مورد برشه از سالفان که به تکرار دزدی دستنم، قطع انگوشتان دست چپ یا قطع پاها یا زندانی کردن بروان و بلود سرقت اجرا می شود یعنی میگه همونطور که طبق بعض از روایات ما همه دست رو قرد نمی کنیم طبق یک روایات دیگه ما باید پا رو قطع کنیم مثلا انگشت پا رو باید کنیم یک روایاتی دیگه <تصفح> که ارس کنم خدمتتون این متقلی که روایات این خدمت رو میتونن به ما بکنن اما چهارمین مطلبی که من بانوان کارکرد روایات گفتم براتون چهار پاسداری از ارزش های دینی پاسداری از ارزش های دینی با نقد روایات حالا اینجا من تو پراتیزم زعیف تفسیری حالا میتونیم تو هم ننمیسیم برای من چون تو تیتر مقالم کلمه ضعیف نیست الان بی خاطر زعیف رو تو پراتیز نمیشتم ببینید مرحوم عجالی طبال موارد روایات رو میاره برای رد کردن میانه برای چی رد کردن تو معتقد یک سری روایات ضعیف تفسیری داریم که به بعضی از بدااست ما صد میزنیم. مثلا فرض بفرمایید مللاش معصوم ملک معصوم درست. ما در زین آیه 102 سوره بخره دو توم فرشتر رو داریم به نام حاروت و مارود حاروت و مارود خب بگه تو روایت تو روایه تفصیلی چی در باره حاروت و مارود اومد خب این حاروت و مارود دو تا فرشته هستن که تحجم میکنن از عسیانگری انسان خدا میگه که اینقدر تحجم نکنه از عسیانگری انسان یه سری به زمین بزنید ببینن میتونی خودتون حس بکنید بعد اینا میان در زمین و خب حسشون میشه حس بشری بعد یه خانومی میبینن به نام سهرای عاشقش میشن بعد اون خانم میگه که برای بله اینکه من برسید بعض شراب بخورید شراب میخورن بعد جنایت میکنن بعد هزار تا فسکو فجور به دوتا فرشته آخرش هم همین تا مجازات میشن هم بو خانم مصد میشه دنوار مجازات خب این روایات همه از اسرائیلیات و عباطیله اگر کسی این روایت رو بپذیره اون وقت یک قضیه به نام اسمت فرشتگان به طور کلی تختهه میشه تا بگیرید به بعض از فیانبران مثلا اون عراجیفی که راجع به وقت دعو میگن که حالا زید آیات سوره ساده دیگه و هر اطاکن نبه خسر استصبر و مهران مرموم علامه طباطبایی یه جایی روایتو میاره برای تنبه به این که ما نباید این روایت را قبول بکنیم ما نباید این روایت را قبول بکنیم و شیوه علامه طباطبایی چیه در نقد روایات ببینیم مرموم علامه طباطبایی من اینجا بردین به دوستم شیوه علامه طوابایی تبا در ذکر یا نقد ال اگر این شیوه شیوی که مرحوم آیت الله معرفت با تفسیر دیشتری در این کتاب استفاده میکنند یک روایات ضعیف و سند تفسیری را در صورت موافقت مضموع آنها با قرآن میخذیرد یعنی <صح> <تصفيق> اصلا نمیگه که حدیث تفسیری باید یک سند متصری داشته باشه و سندشن لزوماً راویانش سقه باشن برای اینکه یک روایت تفسیری شرط نمیذاره صحت سند این از یک طرف دو گاهی همیشه نه گاهی روایات حتی صحیح و سند را در صورت تعارض محتوائی با مبانی دینی یعنی مثلا قرآن عهدن کنار میگذارد یعنی اساساً علام دبا یک رفتار جمود جمودآمیزی نداره که میگه بابا این روایت سندش صحیح یعنی سند صحیح ایشون رو از کنار گذاشتن حدیث برحضر نمیدارد که بگه که با این حدیث حد سندش سعیه در کتاب مثلا کافیه یا مثلا در منابع سنت در کتاب سعی بخاریه اصلا کاری به این مسائل نداره یعنی های سند رو الو باید مثلا من اصلا که با سر با شیش به باید باید تماس گیرم ببینید جومودی نداره که بگن بابا حدیث حدیث صحیح و سنده باشه باشه با خبر واحده خبر واحد که الزام بر من نمیاره حالا ممکنه خبر واحد فقهی الزام بیاره ولی خبر واحد غیر فقهی برای حسن منش دهی باشه که منو نمیتونه محدود بکنه نمیتونه منو ملزم بکنه حدیث رو بندازید کناب چون با قرآن معایره چون با عقل مقایره ای اصلا ایشون رو در ندارد و آنچه که تشخیص میده عنوان مبایی دینی ارزش های دینی که گاهی در بعض از روایات ما واقعا تخت این اون برش مهمتره حفاظت از ارزش های دینی برش مهمتره و در راه حفاظت از ارزش های دینی اصلا رو در نداره با حدیثی که بذاهر سند صحیحی داره برادر مشی علامه طباطبایی در و به کار یا یا نقد روایات از این دو تا محور عدول نمیکنه حالا اگر یه روایت صحیح و سند بود مزامیش هم موافق و قران و مبانی دینی بود به قول معروف نورن نور الان نور این روایت هم سی و سنده هم منامینش هم موافق با آیات و سایر روایات این دیگه نوران الان نوره ولی اصلا تحت تأثیر زواهر سند و صحت ظاهر سند قرار نمیگیره اینم راجع به شیوه علاوه تبا در بکارگیری یا نقد روایات حالا من باز از جهت این که ما همه چیز رو سر این کلاس نمیرسیم برای این شما بگیدیم ولی در این حال میتونیم منابعی رو عرص کنید نتون معرفی بکنید اگه علاقه من بودید انشالله بیرید منابع رو بگیدید یه خانومی به نام خانم دکتر شادی نفیسی که الان ایشون استادیار ما هستن در همین دانشگاه به تو گروه داد گروه ما هستن با خودمون استخدامشون میکردیم ایشون رو روش فهم و نقد حدیث از دیدگاه علاله تواتبایی در تفسیر علمیزان ببینید، این رساله دکلویه یعنی واقعا شناخت علاله بوزه علامه در ارتباط با حدیث ایشون چطور از حدیث استفاده میکنه برای فهمش برای نردش روش ارنابه در فهم و نقد حدیث چی بوده یعنی شده یک کتاب چاپ شده یعنی رساله که بعدم بعد از دفاع البته ده سال قبله نه حالا چاپ شده ولی کتابش تو بازاره، شاید تو کتاب کنه خودتونم باشه این رساله دکتری ایشون بوده برای این حکایت میکنه که مسئله حدیث در تفسیر الویزان باید جای باقش بشه و خیلی مهمه ما همین توی این شماره که در پیش به جهت بزرگ داشت اعلامه طب چاپ کردیم چون خود من سرده بیر این مجموعم غیر از حدیثی که خود بنده نوشتم یک حدیث دیگه از ببخشید مقاله‌ای که خود بعده نوشتم یک مقاله ای نوشته شده نقد محتوایی حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی آقای نادری آشوودی باز یه بنده خودی دیگه آقای حمید باقری یک مقاله دیگه نوشت تفسیر معصور و نگاه علامه طباطبایی به آن در واقع حداقل 3 تا از مقاله های این مجموعه در ارتباط با شناخت تفسیر اصحایی روایات تفسیری یا نقد محتوی حدیث از نگاه علامه تبا تبایی خب ما برای اینکه که کنم خدمت بحث پرونده جایبای حدیث فرط تفسیر رو این شب و دیگه مطلب رو موکول به هفته آهی ببنید الله هفته آهیی بحث جدیدی برای شما داشته باشیم من اینجا رو آسیب شناسی روایات تفسیر قبل از نماز برای شما گفتم گفتم که یکی از جعل خیز ترین حوزه‌های حدیث حوزه‌های حوزه, حوزه روایت تفسیری این حوزه به قدر جعل خیزه که میگن احمد بن گفته بود و این سخن از احمد بن حنبل نوشتند آقا سه چیز اصلی ندارد سه چیز اصلی نداره یعنی ریشه ای درسته یکیش تفسیره یعنی روایات تفسیر یکیش مغازی یعنی اخبار مربوط به جنگ ها و غذا یکیش هم ملاحمه که ملاحم اخبار مربوط به آینده آینده جهان آینده ی ها این هم ملاحمه یعنی اون پیشگوی های مربوط وارده هیچ هیچی کتابی نمبره. خب این سخن سخن احمد بن عمبره. کسی که بزرگترین کتاب حدیثی رو نوشته و در این بزرگترین کتابشون که علم اون وقت شاید سقه ها حدیث هم وارد کرده هست سخن دیگریه سخن شافعیه، سخنی از شافعی ایشون منصوب با آقا شافعیه که شافعی میگفت از ابن عباس صد تا حدیث تفسیری هم قابل اثباتی است الان ما هزاران قول تفسیری داریم از قول ابن عباس حالا اون کسی که از من و تو به صدر اسلام نزدیکتره یری یعنی شافعی متوفای دیس قصص که چون گفته که از ابن عباس واقعا صد تا حدیث تفسیری هم که یه نسبتش به ابن عباس باشه قابل اثبات نیست. این این حوزه جهل لیسه. بیه کتابه. خب در این حال اگر ما بخوایم فاسیب شناسی بکنیم روایات تفسیری روایت تفسیری از چند منظر آسیب شناسی شدن یک ضعف اسناد روایت تفسیری و ضعف اسناد روایت تفسیری دوتر شعبه پیدا کنید یک فقدان سند متصل و مرسل بودن بسیاری از روایت تفسیری این یکی از عوامل ضعف اسناد روایت تفسیریه دو شود ضعیف و مجروح حال بودن بسیاری از ناقلان سندها سندها یعنی در واقع ضعف اسناد رواید تفسیریه از این دو منظره بعض از روایت تفسیری مرسلم مثلا قال رسول الله فیهاز هل آیته کذا او سندش سندش مرسل سندش حذف شده سندش اسقاط شده سندش گم شده البته خود بدونیم سند بعض از روایات که حذف یا گم شده نوع هشتاد اطخانه سیوتی رو بخونید سیوتی بنده خدا میگه که تا قرد دوم روایت تفسیری رو با سند گفتن در قرن سوم بعضی آمدن تفاصیل رو تلخیز کردن سنده رو حس کردن بعد میگه از همین جا دیگه دروغ و جمع زیاد شد چون یه سندی نبود کسی یقیقی کسی رو نمیدارد که از کی شنی. حالا بعضی از رواه تفسیری سند داره نه اینکه نداره ولی در سندش افرادی هستن یا تضعیف شدن یا مجهولن مجهولن بنابراین واقعا رواه تفسیری آنبش گرفتار زرف اسناده یا ترس کنم خدمتون بدلیل اینکه از اساس سند نداره طبق گفته سیودی آخر قرن دو و قرن سه اسناد رو به قصد راحتی و تلخیص حصف کردن دو، بعض از روایتی که سند داره سندهاش افراد مجهول یا تضعیف شده دیده میشه این مشکل اول مشکل دوم، جعل در رمایات تفسیری که این مشکل ناشی از مشکل اوله یعنی وقتی که اصلا به وقتی تفسیری هست میشه فرصت هم آمین خیلی میدون خیلی راهدون آن رسول الله وقت جلد در وقتی تفسیری خصوصا حوزه فضائل و رضائل یعنی آیاتی که میتونه تطبیر پیدا مخونه برای فضیلت سازی به یک کسی یا آیه‌ای که میتونه تطبیق و پیدا برای اثبات مصمتی برای کسی دیگر این هم سخت مشکلیه که وزو بالا وز کرده سوم ورود اسرائیلیات به صحنه تفسیری از قول صحابه تابعان تا رسول الله یعنی اس، اسرائیلیان تفسیری خودش یه معقوله یه بارن روایت تفسیری شده ظاهر روایت میه بار رسول الله کذا بلی باطن قضیه ما داریم یک حکمی از تورات یا یک مسئله از تورات رو بیمی کنیم مثلا فرض می فرمایی حالا چون من به خانوما ارادت دارم یه برای ابراز ارادت مثلا از قول پیغمبر نکنیم کنم که زن از دنده آدم از قول رسول الله زن از دنده آدم درست شده برای همین بشتواری دنده مرد یکی کم در دنده ایمانه این این مطن طوران دوره یه قال رسول الله برش درست کردن این این اونه یک رو قال رسول الله راش درست کردن یعنی این چیزی که بیان بکنیم براتون بسیاری از این اسرائیلیات هم از قول صحابن مطابقه این بعضی از این صحابه و تابعین ریشهای در یهودیت و مسیحیت دارند مثل کعبال احبار، مثل تمیم و, و بعضی نه مثلا فرض کنید اصحاب پیغمبر رو پر کردن مثل ابو خریره، مثل عبدالله ابن عمر ابن آس مثل مثلا فرض بفرمایید و حبه ابن که اینا به بعضی از اصحاب خوراک دادند خوراک دادن و اونا از قول خودشون میگن که الا ای شما است که تفسیر این سرسمت رو از این کتاب مطالعه بفرمونید با مثال‌های بسیار متنبئی هم راجع به در رابطه تفسیر دسالم داره هم راجع به ورود ईसाईات به صحنه تفسیر از قول اینا مثال داره ان شاء بخونید و آگاه بشید و ما باید مسئولیاله با مواریس تفسیریمون هر سبب برخود کنیم من در این آهارو منباب بشارت که شما معلوس نشید منباب بشارت شما معلوس نشید برای شما بیند که آیه خدا هم عرفه شبا این که با بخونیم آخر اومدشون دیم تفسیر نوشتن به نامه تفسیری رو اثری الجامعه ایشون فقط تا پایان صورت بغره هشت قول تفسیری رو که یه بوی از خرافات نده بوی از اسرائیلی نده بوی از از شبت تا آرزو با قرآن نده فقط برای سوره بغده جامعه بلی 8000 قول تفسیلی البته از روایات شیعه و سنی هر دو یعنی ات تفسیر و جامعه و جامع و بعد دست نوشته ایشون در باره سوره آل امران و و غیر و غیر بعد از وفات ایشون منتشر شد برای تا زنده بود خودش تا پایان سوره بقره رو از تفسیر و تسری جامعه نوید در حد سوره بغرهش هشت ازار تفسیری یعنی در این ما سرمایه هایی داریم در شیعه رسولی که باید مسئولانه و خوشمندانه ازش ما استفاده بکنیم و سلام آقاید و